بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد اللهم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعراثط واللعن الدائم على اعداء اجمعين لعن الى الرائع يوم الدين آمین یا رب العالم به سنت همه سالها به یاد جمیع در گذشتگان از موالیان محبین و شیعان امیر المومنین از هست قدیر تا امروز کسانی که سالهای گذشته بین ما بودند و امسال ره سفار عالم برزخ شدند امام شهدای جنگ شهدای انقلاب شهدای مدافع عرم کسانی که سالهای پیش در این مجلس بودند در طول صنوات برای شادی اروا همیونها اونها رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلوات سنت من در روز اول ماه مبارک رمضان این است در مختصات ماه صحبت میکنم و معمولا از روز بعد بحث اصلی رو آغاز بیکنم دعایی رو از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت میخوانم به چقدر این دعا پر است این دعا از دو جهت قابل اهمیته جهت اول ما معمولا اتصالمون به ماه مبارک رمضان از که؟ از اول یعنی سر سحری که میشینیم هیچ قبل و بعدی نداره یعنی با سفره آغاز شود ماه مبارک رمضان ولی پیغمبر ما اینجوری نبود ما چجوری خودمونو خودمون رو جرأت می کنیم و خجالت نمی و خودمونو امت اون آقا میدونیم اینو اتصال امت از سفره اول سحری به ماه مبارک رمضان ولی اتصال پیغمبر و امت با دعا وقت دعا در آخرین روز شعبان چه دعا چه دعا من یغته از دعایشان رو بخونم به خدا التماس میکنن تزرع کن حضرت ختم مرتبت اللهم انها هاذا الشهر المبارک الذي انزلت فيه القرآن وجعلته هدانا للناس خدایا این ماه مبارک که قرآن درش نازل شده جهت اول و جعلته هدن لناس و اون قرآن رو منشه هدایت برای مردم قرار دادی و بینات من الهدا و تمام امور هدایتی رو در او بیان کردی و الفرقان قد هزار آمد، بعد سه تا دعا میکنه پیغمبر یک فسلمنا فی ما را در ماه مبارک سالم بدار یعنی آجزانه از حضرت حق میخواد خدایا مریض نشم نتوانم رمضان را کما وقع درک کنم و سلم هلنا ماه مبارک رو برای من سالم بدار یعنی مبتلاع به این معنا نشه که اول و آخرش معلوم نشه کیه. معلوم میشه اگه چنین اتفاقی افتاد این اتفاق اتفاق عادی نیست گرچه به حسب فتوه هست ولی عادی نیست پیغمبر میگه این من سالمش بدار من بفهمم شب اول ماه که بفهمم شب عید فطر که این برای پیغمبر ارزش داره چون پیغمبر شب آخر ما دعای ودا میخونه من و شما خوشحالیم که همه هم داره شب, شب شر تمام چون عظمت ماه رو درک نکردی. چون حظمت ماه رو درک نکردی ولی پیغمبر با چشم گریان با این ماه دعا میکنه برای که بتونه شب آخرشو رو بفهمه شب عیدشو بفهمه میگه خدای یعنی ماه رو برای ما سالم بدار بنابراین اگه سالم نشد به اختلاف خورد خب این یک و سلم همنا و ماه رو بز ما سالم بدار ماه را برای ما سالم بدار یعنی اول آخرش معلوم بشه شبهتش معلوم بشه برخی از بزرگان رو میشناسم که تقریبا بالغ بر سی ساله که اینها به خاطر اختلاف در ماه که اتفاق میرفت داشت شش شب احیام میگرفتن برای که قدر رو درک کنن این به خاطر ماه به خاطر فتوه امکره زود بشه. و سلم هم و او رو از ما سالم بدار یعنی که آقا یک کاری کن من در ماه مبارک رمضان گناه نکنم چرا؟ چون ما در عدیه داریم که ماه مبارک رمزان در قیامت شفاعت میکند هیچ ماه دیگه این قدرت رو نداره و در روز قیامت ماه مبارک رمزان اعلام رضایت می کند من از این راضیم یه همچی قدرت یه همچی زرفیتی در این ماه وجود داره نه محرم این خصوصیت رو داره نه ایام ذل خصوصیت رو داره فقط رمضان نه ماه رجب نه ماه شعبان اینا هستن فقط رمضان است که میتواند شفاعت کنه و رمضان است که رضایت اعلام رضایت میکنه ای این ظرفیت این ماهه بنابراین ساده است که ناش رد شد پیغمبر چه میفرمودند ماه مبارک کرم رسی سبحان الله خطبه خوندن سبحان الله مازا تستقبلون و مازا یستقبلو کم سه بار این جمله رو فرمودن مازا تستقبلون و مازا یستقبلو کم چه چیزی رو به استقبالش می روید یعنی بروید و چه چیزی به شما روی آورده است سبحان الله سه بار بیان کرده یکی از کسانی که در محظر پیغمبر بود بلند شد گفت یا رسول الله به ابی انت و امنی یا رسول الله وحی و نزل. وحی نازل شده او ادو و یا وقت جهاد شده قال لا نه نه وحی آمده و نه جهاد رتبه جهادو رو ببینید چقدر بالاست چقدر امت آماده جهاد بودن و چقدر پیغمبر مشوق مردم به جهاد و چقدر یهود با بخش جهاد اسلام مشکل داره چون تمام اون چرا که در طول سال اینها رشته قرآن جهاد اسلامی پنبهش میکنه و اونها با خاطر همین نسبتا با آیات جهاد مشکل دارن و با بخش جهاد اسلامی مشکل دارن نه به عنوان یک فرقه سیاسی ولاکن حساب نه هیچ نه نوهیه و وقت نوه جهاده ولاکن شهر رمزان ماه مبارک رمضان، که یقفر الله تعالی که می خداوند فی لیلتن لکل اهل آزه لقبله در یک شب همه یک کسانی که کعبر قبول بستر مقفرت ماه مبارک رمضان بخشش عمومی است وقا بعد راوی ادامه میده فلقوم رجلون یا آدمی اونجا نشسته یه حضر سرش سرشو بالا پایین کرد بخن بخن, بخن با یه حالت تمسخر مبارک باشه مبارک باشه فقال له النبی وجود نازه پیامبر بهش خطاب کردن که انهو زاغ از به ما سمعته از که برای گرون تموم شد این حرفی که زدم یعنی باور نکردی باور نکردی که ماه مبارک رمضان چه ظرفیتی داره به سخریه گرفتی بعد یارو نه آقا من به سخریه نگرفتم تعجب کردم شما میفرمایید همه اهل قبله خب لیکن لا والا قب به خدا قسم یا رسول الله تعجب نکردم لا یا رسول الله نه تعجب نکردم لیکن زکرت المنافق منافق هم در این ماه بهره میبره حضرت فرمودن المنافق و ولی للكافر کافره فیزا شعیه نه منافق که کافره منافق که کافره و کسی که کافر باشد از ما مبارکت رمضان بهرهی نمیبره منافق و کافر دو عنوان هستند نتیجه شون یک چیزه یا ایوه النبی جاهد المنافقین ول، والکفار وعلوز علیهم و وغل علیه، برشو سخت بگی منافقین منکرین خدا هستند به قلب و کافرین منکرین خدا هستند به قلب و به زبان هر دو رو پیغمبر در یک رتبه میدونه منافقین دشمنان درونی هستند و کافرین دشمنان بیرونی هستند حالا کسی بخواد راجب به منافق صحبت بکنه خیلی دور نباید بره تصور نکنید که مثلا دنبال چه فرقهی باید بگردین دنبال مسعود رجوی و اینا اینا که خب اصلا در اعداد آدمیت نیستن که آدم بخواد محاسبهشون بکنه دنبال کی باید بگردین یواشکی بگم کسی نشتوه بیشترین ممارزه قرآن با منافقه و انوان و مصداق منافق صفیه سازان هستند کسانی که به زبان اهل دین ولی به قلب از طرفان کافرند و این نقطه نقطه اساسی قابل اسپات هیچ شرطی به وحدت نداره راهی بیگه پیغمبر رفتن بالای منبر از هر پلهی که رفتن بالا پله اول آمین پله دوم آمین پله سوم آمی. این رسول الله ارتقل المنبر وجود نازه پیغمبر از منبر بالا رفتن وجود نازه پیانبر از منبر بالا رفتن. فقال آمین آمین آمین ست آمین گفتن در هر پله از بینبه فقید الله یا رسول الله بهشان عرض کردن ما کنت تسن و آزار چی شد که شما آمین گفتیم در پی اون خطبه که چه چیزی به شما روی آورده است و شما به استقبال چه چیزی رفتید و این ماه ظرفیت بخشش همه اهل قبله رو داره مگر منافع ستا آمین آه چه اتفاقی افتاد شما آمین گفتی سه گروه دیگر رو از کسانی که بتوانن از این ماه بهره من بشوند و خارج کرد به این واسطه حضرت فرمود من بر هر پلهی که قرار گرفتم قال علی جبرئیل جبرئیل به من گفت رغم انف ابد دخل علیه رمضان فلم یغفرو له فقلت آمین گفتم بجز کسانی جبرئیل به من گفت تو فرمودی رسول گرامی که همه بخشیده میشوند الا کسی که ماه رمضان بیاد و تلاش برای بخشش نکنه یعنی براش عادی باشه ماه مبارک رمضان گفتم آمین راغم عن عبد ذكرته عنده فلم يصلي علیک فقلت ام گفتم مگر کسانی که نام مبارک تو در حضورشان برده بشود و صلوات بر تو نفرستند گفتم آم گفتم آمین یعنی ماه رمضان ماه چی دنبال ذکرای خیلی فضایی نباشت آلی ترین ذکری که در تعالیم و معارف اسلامی وجود داره همین سلوات بر محمد و هست. تنها ذکری است که دارای هش اصل اعتقادی است هیچ یک از از کار موجود این پتانسیل نداره 8 اصل اعتقادی در سلوات خوابیده راحت ترین چیزی رو که مداوا میکنه یکی نفاق یکی بخله نفاق و بخل حالا بخله که شماها ندارید برای رفع نفاقم فرمود به این که بخیران کسی است که اسم من برده بشود و سلوات نفرست خوالا <تص> تو صلوات فرستادی ولی خب گوش نکردی من شو گفتم من اسم پیغمبر رو بردم اگه بخوای حرفا رو اینجوری گوش کنی گرفتیدون چهار سال چیکار کردی پس یا علی دقیق باشید دومین چیزی دو که فرمود فرمود این است که اگر اسم من جایی آمد سر واد بفرستید هر کسی یواش سر واد بفرسته اهل نفاق بلند سر واد فرستادن بر محمد و آل محمد نفاق رو برداشت ظرفیت سلوات و خدا به جبرئیلش فرمود به پیغمبر بگو اگه بخواد که به جایی برسه باید در ماه مبارک رمضان اهل سومی سف سفومی رقمن فعبد نعدرک والده او اهدهما فلم یدخل الجنه مگر کسی که پدر و مادر داشته باشد یا یکی از اون رو داشته باشه و اهل بهش نباشد یعنی آق والدین باشد اینا از ماه مبارک رمضان استفاده نمیکنه منم گفتم آم یعنی ماه مبارک رمضان ماه خیریات و خیرات و اینا هست برادر من اما بشه که همش تو خیریه ها باشی پیش پدر مادرت هم خوش. یتیم نوازی هم خوبه ولی بهتر از یتیم نوازی چی ها احترام به والدینه خیلی تعبیر روانت دقیقه می فهم آدم پدر مادر داشته باشه و وارده بهشت نشه یعنی اسباب بهشتت هستن و چقدر این اسباب بهشت در دوره امروزی مورد اهانت قرار می گیرن و چقدر مورد بیتوجهی قرار می گیرن در حالی که پیغمبر و پدر مادر اسباب بهشت هستند. چنین ظرفیتی به ما روی آورد ظرفیت بخشش در این ماه بی‌نظیره مقفرت خدا شهر دعیتم الاسیافت الله زیافت شهر دلبرکته و رحمت و مغفرت مغفرته پیغمبر میفرماید اصلا میدونید چرا ماه رمضان رو اسمش رو رمضان گذاشتن هم بیان بکنم که چرا این ماه ماه مغفرته و مغفرتش در حد اینه که ما اگه اون چهار گروه نباشیم استفاده خواهیم کرد ولی با تلاش کنید کاری بکنید در روایت آمده روز, روز داری با روز روزهخواری یکی نباشه یعنی امروزت که شروع کردی به روزه گرفتن با هفته پیشت که روزه نوردین متفاوت باشه با رفتارت متفاوت باشه ها همه آین اعتماد میگن که خورشید نور خورشیدی یکی از امور است که موجب استحکام استخوان میشه ویتامین دی رو تامین میکنه ولی مشروط به اینکه تو خودتو در معرض نور خورشید قرار بدی ماه مبارک رمضان پتانسیل بخشش داره منتها مشروطه به اینکه تو خودت را در معرض چنین بخششی قرار بدی حال پیغمبر میگه میفرماد ببین انما می رمضان ماه مبارک رمضان به رمضان نامیده شده لنهو یرمز مز به خاطری که گناهان رو میسوزانند ها تو بهره نمی اصلا یک، بیان دیگری داره پیغمبر که زرافتش ببین تا چه حده ان نشقی منهور مغفران و لافی ها از شهر العظیم آدم بد وقت و کسی است که خودش رو از مقفرت الهی در ماه مبارک رمزان چکار بکنه محروم بکنه معلوم میشه که ماه اگر بخواد ماه مقفرت باشه باید دنبال یک فرمولی باشی کار بکنی، تلاش بکنی اگر هم روزه میگیری باید یک روزه درست درمان بگیری اگر هم در ماه هستی باید یک رفتار و تعامل درست درمان داشته باشی خود ورود به ماه و استبرار ماه برنامه داره خود روزه برنامه داره اینکه شما بخواید روزه بگیرید باید بر اساس روزه بگیرید. این که در ماه مبارک رمضان ماه زیافت الهی است اید خودش برنامه داره. ماه مهمانی خداست مگه ماه های دیگه ما سرصفه دیگری هستیم. سر سفره خدا این چرا ماه رمضان ماهصففره ماه مهمانی خداست. یعنی که این ظرفیت در ماه رمضان شما را مهمان ویژه حضرت حق قرار میده. لذا آداب داره. من در سال گذشته در شب جمعه سال گذشته راجب مراقبت و آداب زیافت ماه مبارک رمضان صحبت کردم و دو جلسه اخیرا راجب مراقبت ماه مبارک رمضان و مراقبت از روزه اگه کسی بخواد به نتیجه برسه باید این رو گوش بکنه این رو باید پیگیری بکنه روزش باید روزه باشه نه گرسنگی و تشنگی تحمل گرسنگی و تشنگی و بیان آخر از فرمایشات رسول گرامی من این سلقه من شهر رمضان ولم فر ولم فر له فلا قفر الله له ماه رمضان بگذره و کسی مقفور نشده باشد مورد بخشش خدا قرار نگرفت و باشه دیگه بعیده که خدا او رو در ماه های دیگه ببخشه میدونی چرا؟ این به این معناست که انگد شرایط برای بخشش در ماه مبارک رمضان آماده است که اگه استفاده کردی به ادنا مراتبش بخشیده موشکی اما اگر استفاده نکردی شرایط برای بخشش در سا... سایر ماه به این آسانی نیست به این ما ماهیز که خدا تعهد کرده است بخشد و ماهی است که ما تعهد کرده این که بخشش نخواهیم دنبال این هست که افتار چی بخوریم؟ صح رو چه بکنیم؟ شد یه ابو همزهی هم میخوانی نه شد خیلی چیز نیست ماه استفاده است برادران یه ماه هم هست با برنامه داشته اگر تلویزیون اجازه داد انشالله به برنامه های معنوی یه ماه مبارک رمضان هم برسید اگر اجازه داد از سلام و یا عبا والله روحي التي علت فنعي كلك من السلامه ضه ابدا ما بغيت وبقي الله يدنار والله جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على المساء این نحوه خوندن شما اصلا یاد آورید که بیست ماه مبارک را میزنه یعنی انقدر قرص و محکم شما توسل کردید به سید شهاده من نمیدونم حالا تا خدا به داد برسه 18 و 19 وان چیکار کنی به پیشگاه مقدس حضرت رسول گرامی سه سرواتو